داستان پری جنگلی و هیزم شکن روزی روزگاری در ده کدهی هیزم شکنی با مادرش زندگی می کرد. و اونقدر فقیر بود که برای گذروندن زندگی مجبور بود در جنگل هیزم بشکنه و در بازار اونو بفروشه هیزم شکن مردی سخت کوش فروتن مهربون و نسبت به مادر تنهاش بسیار هم وفادار بود بیشتر از سی سال سن داشت اما چون فقیر بود ازدواج نکرده بود در واقع هیچ دختری در دهکده حاضر نبود با چنین مرد فقیر رو پر نسانی ازدواج کنه یه روز مثل همیشه هیزم شکن با تبری به کوه رفت تا هیزم بشکنه در دل کوه کپی بزرگی از شاخه های قط شده رو جمع کرد که یه دفعه صدای خشخشی شنید. یه آهوی کوهی ظاهر شد و با گریه گفت خواهش میکنم زندگیمو نجات بده. شکارچی دنبال منه و میخواد منو با تبر بزنه. خواهش میکنم منو یه جایی پنهون کن. دیزون شکن آهوی حراسون رو زیر کپهی از برک های کاج پنهون کرد. درست بعد از اون که حیوان را پنهان کرد شکارچی با چهره‌ای ترسناک دوون دوون به طرف اون اومد و پرسید ای رفیق یا آهوی کوهی ندیدی؟ باید از اینجا گذشته باشه. هیزم شکن به نقطه مقابل شکارچی در جنگلی اشاره کرد و به دروغ گفت بله دیدم چند لحظه پیش از این طرف رفت. شکارچی بدون اون که حتی تشکر کنه به طرف جنگل دوید و بعد از رفتن شکارچی هیزم شکن به آهو گفت که از زیر برک ها بیرون بیاد آهوی کوهی گفت از تو خیلی ممنونم تو زندگیمو نجات دادی هیزم شکن گفت خواهش میکنم اما از این به بعد بهتر بیشتر مراقب شکارچی باشی بعد آهوی کوهی برای نشون دادن حقشناسی خودش چند بار تعظیم کرد و راه افتاد که بره اما برگشت و به او گفت دوست عزیز من خدای این کوهستونم و تو جون منو نجات دادی و میخوام به طریقی کار تو رو جبران کنم یکی از آرزوها تو به من بگو تا برات برآورده کنم هیزوم شکن خیلی هیجان زده شد. سعی کرد تصمیم بگیری که واقعا در این دنیا چه چیزی میخواد داشته باشه. انتخاب برای او مشکل بود به چیزهای مختلفی مثل طلا، خوب شدن صرفی همیشگی مادرش و پیدا کردن یه عروس زیبا فکر میکرد. خلاصه، تصمیم گرفت از خدا بخواد در پیدا کردن همسری زیبا بهش کمک کنه. ایزم شکن گفت من هنوز ازدواج نکردم. خواهش میکنم کمکم کن تا زنی زیبا پیدا کنم. آهوی کوهی گفت این کار آسونیه از این کوه بالا برو به دریاچه بزرگی با آبی زلال میرسید که پریهای جنگلی از بهشت پایین میان و در اون آبتنی میکنند. وقتی اونها رو در دریاچه دیدی برو اون لباس های اون پری جنگلی رو که دوست داری باش ازدواج کنی پنهونش کن. وقتی دیدی پری جنگلی از گم شدن لباس آسمونیش پریشون و ناراحته پیش اون برو رو راضی کن که زنت بشه. شکن گفت متشکرم درست همین کاری رو می میکنم که تو گفتی. آهوی کوهی گفت راستی یه چیز مهم دیگه هم هست که باید خوب گوش کنی و اون اینه که تحت هیچ شرایطی لباس بهش بر نگردون تا اینکه که ازدواج کنی و صاحب چهار تا فرزند بشی اگه یه وقتی فقط سه تا بچه داره لباس بهش بدی اون دوتا از بچه هاشو بغل میکنه و یکی رو بین پاهاش می گیره و پرواز میکنه و میره اما وقتی چهارتا بچه داشته باشه نمیتونه هر تای اونها رو با خودش ببره و اون هرگز یکی از فرزنداشو رو جا نمیذاره. آهوی کوهی بعد از این نصیحت به عمق جنگل رفت. هیزم شکن هم در پی دستورهای آهوی کوهی به بالای کوه رفت و واقعا چندین پریج جنگلی زیبا رو دید که در دریاچه زلالی شنا می کردند بیزوم بی سر و صدا لباسهای یکی از پریهای جنگلی را دزدید و پشت سخری پنهون شد و پریهای جنگلی را تماشا می کرد بعد از آبتنی طولانی سرانجام یکی از پریهای جنگلی شروع به پوشیدن لباسهاش کرد و به بقیه گفت هی hey, دوستا وقتی رفتن به خونه است، بیاین لباس ها بپوشیم. پری های جنگلی لباسهاشون رو پوشیدند و در حالی که لباس های در باد میرقصید، سباکبال به سوی آسمون به پرواز در اومدند. اما یکی از پریها مسترب بود چون نتونسته بود لباسهاشو پیدا کنه. همهیه پریهای جنگلی یکی یکی در آسمون برقص در می اومدن. به جز پریه بدشانسی که نتونسته بود لباسش رو پیدا کنه. اون در اطراف دریاچه دنبال لباسای گم شدهش میگشت. حتی با وجود نگرانی و ناراحتی زیباترین دختر روی زمین به نظر می رسید. پس از مدتی هیزم شکند از پشت صخره بیرون اومد و به طرف پری جنگلی رفت و آروم با او صحبت کرد و گفت خانوم عزیز پری جنگلی گفت او خدای من پری جنگلی چنان از دیدن یک انسان حیرت زده شده بود که نمیدونست چطور بدن خودشو بپوشونه شکن گفت خواهش می کنم نترسید لباسهای شما پیش منه پری جنگلی به طرفش دبید با التماس به او گفت خواهش میکنم لباسامو این برگردون اما همونطور که آهوی کوهی بهش گفته بود او لباس ها رو محکم نگه داشت. به جای بازگردندن لباس های پری جنگلی از اون خواهش کرد که با او ازدواج کنه. پری جنگلی در این مورد فکر کرد. هرکس به فکرش نرسیده بود که یه پری جنگلی آسمونه میتونه با مردی در سرزمین انسان ها هم ازدواج کنه. اما کسی قبلا هم به او پیشنهاد ازدواج نکرده بود. از خودش پرسید چه فرق میکنه که مرد آسمونی باشه یا زمینی و به این نتیجه رسید که اصلا مهم نیست اون مرد از کجا اومده باشه او با هر کسی که بتونه خوشوختش کنه ازدواج میکنه به علاوه شکن هم مردی خوشقیافه بود پری جنگلی به این امید که شکن بعد ازدواج لباسهاشو بهش برمیگردونه پذیرفت که زنش بشه و باهاش ازدواج کنه به این ترتیب شکن اونا به خونش برد بعد ازدواج پری جنگلی از شوهرش خواست که لباسهاشو بهش برگردونه هر بار که این تقاضا رو میکرد شوهرش به او جواب میداد لباس آسمونی تو برای انسان زمینی لازم نیست من از تو میخوام لباس انسانها رو بپوشی تا وقتی احساس کنم دلم میخواد که لباس رو به تو برمیگردونم لباس لباسهای آسمونی رو جایی مخفی کرد و سالهای زیادی به این ترتیب گذشت مرد و همسرش سه دختر زیبای پریوار داشتند و از زندگی خود بسیار راضی بودند پری جنگنی دیگه لباسهای آسمونیش رو نمیخواست اشق شوهرش اونو راضی میکرد و از بزرگواری مادر شوهرش هم سپاسگزار بود اما گاهی خاطرات زیبای آسمون به خاطرش می اومد. او دلش برای آسمون باقمانندی که ستاره های پنج رنگ در اون پراکنده بودن و بوی خوش گلهای زیبا و دوستا و پدر و مادرش در آسمون تنگ شده بود. سرانجام پری جنگلی از قم طبان فرسای قربت و اشتیاق مریض شد. روزی از شوهرش خواهش کرد. عزیزم خواهش می کنم لباس آسمونیم رو به من نشون بده. تو به من قول دادی وقتی با تو ازدواج کنم لباس هامو بعد گردونی. حالا من همسر تو هستم و به تو تعلق دارم و هرگز به سرزمین بهشت بر نمی گردم. ببین سه دختر زیبا دارم با چنین فرزندای دوست داشتنی چطور میتونم تو رو ترک کنم وقتی اینظم شکن حرف اونو شنید متاسف شد که چرا های اون رو این همه مدت پنهون کرد او فکر کرد که خیلی احمق بوده که به زنش اطمینان نکرده بنابراین بدون توجه به دستور آهوی کوهی لباسها رو به زنش برگردوند وقتی پری جنگلی رو دید ای صورتش رو روشن کرد اونها رو به قلبش فشرد پوشید میخواست هرچی زودتر چشمانداز زیبای آسمونی پدر و مادر با محبت و دوستای سمیمیش رو در بهشت ببینه وقتی هیزم شکن خونه رو ترک کرد پری جنگلی دو بچهش رو تو آغوشش گرفت و یکی دیگه رو میون پاهاش و به بهشت پرواز کرد و چنین بود که هیزم شکن بچه ها و زن دوست داشتنیش رو از دست داد تنها شد و سرانجام بعد از روزها و شبهای قمالود بسیاری از قصه دق کرد و مرد. روز بعد از مرگ شکن خروزی روی بام خانه او پرید و سرش رو به سوی آسمون بلند کرد و آباز سر داد این روح شکن بود که به شکل خروز درآمده بود. از اون زمان به بعد تمام خروزها هر جای زمین که باشد وقتی آواز میخونند به محل بلند میپرند و سر به سوی آسمون بلند می‌کنند میگن روی هیزوم شکن بیچاره که به شکل خرس در اومده است میخواد وقتی زنش رو به زمین فرامیخونه هر هرچه بیشتر به آسمون نزدیک بشه کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می مهران دوستی تی نقطه ام نشانی وبلاگ ما ام